الحمدلله رب العالمین و الله علی سیدنا و, و آله قیدین و طاهرین و از شد راجع به خرمت رشته که اول بحث آخر آخربر انصافا جایی بحثیم این مهمان داره برای بعضی خوطیه ها متعرض شد رحصه ست آیه مبارکه کتاب تمثل شده برای خرمت رشته یکیش یکی دو مورد در قرآن کریم که هم, هم یک جامدن جا تغییر به سوخت اکل امون صحت اکانون و این اکل سوخت رو در یک آیه نسبت به یهود و منافقین داده و با شواهد موجود در تفسیر آیه میشه در ذهنیت خود اهل مدینه این بوده که سوختی که اینها ها میخوادن منافقین و مثلا یهود همون رشده همون رشده این رو به خود قایده میشه تمثب کرد اما با درمان گرفتن تفصیل چرا؟ در اینان احسانت هم آمده یکی هم آیه من لم یحکم به ما انظر الله خوالای که هم به این هم تمثب تریح نشد ایلات اشاراتی در ربایت آمده و این رشروع دنش مبدیست اینکه این که به اصطلاح به خاطر کلمه یحکم شامل قضاوت هم بشه فقط فتوا نباشه خوب امدادن نباشه شامل قضاوت هم بشه که از ترین اصافا همینطور وقتی این نازر به حال قاضی هم بکی این یک معنای اهم معدرشوه است. ممکن است که قصیدهی در وقت حالش بگن با خاطر اون قصیده و با خاطر اون تملح به غیر ما انظر الله حکم بکنه بکی در برحال به نیست و آیه سروم که در تو دوبه هایل حکام بود از این ظاهر این حدیث مبارک مروی از حضرت از آن مورد آیه رشنگ هر بدی هم گیز ما احتمال دادیم که آیه اهم از رشوه شد در حال چون معمور هستیم در رجوع به تفسیر و احلوه این تفسیر مراد از آیه مبارکه صدرن و زیگن و تفیقن مراد رشنگ این هم ست آیه که را جبیه. اون حدیث معروف لعنه لاغ راشید و هم که معروف الساعه من حديث الله راشل مرتشي در مصادر در یک اهل سنت مثل کافی بخاری و مسلم توی مصادر ما هم کلا نمیاد لعن الله راشل مرتشی در روایات ما نمیاد ایشون هم که واضحه ما عناوین دیگه داریم مثل عرش حافل حکم و عنا به اسانی سفتون آمده عرش حافل حکم و قرخل الله العظیم ما اومده اما این تعبیر لعن الله راشل مرتشی این قاعده نه.lambda نسبت به اجتماع هم که واضحه که دلالتش بر که اگر البته دلالت اوسر اوسع از روشه مثلا نظام اجتماعی کلا تو بخش قضایی باشه، تو بخش اصل اصل عششی باشه، نظامی باشه، انتظامی باشه هر بخش اجتماعی بخواد بخاطر پول جابجا بشه، جا خب جامعه رو به هم می‌ندازه. این اختصاص به باب قضاوت هم نداره. یعنی حکم از باب قضاوت بحثی در اینجا که علمای ما مطرح کردن که اون در اون وقت کن بحثش بعد میار مرحوم آای خویی هم آوردن دیگه چون حض طولانی شده و نخاتش واضحه امروز دیگه عبارت یشون نه آوردن فقط یک اشاره ابره در خود مرحوم استاد هم اینجا مقدار از عبارت مستند مرم نراحی نقل کردن و خودشون هم یک تفصیل سعی کردن تو درد که کمی خواهی خواهی ابهام داره چون این مسئله صبر متعدد داره هم به لحاظ به اصطلاح پول دادن در غیر مقام غذابه مثل که به نظر به سیستم اجاری پول بده ولی که کارها شده یکی هم پول دادن به بازی به نحنهایی متعددی خواهد شد اینه که محل وقتشون شده که های خصوصا ما یک روایتی داریم که ما داریم شخصی در یه نشسته کسی بیاد گوه رو یرشو اون رشوه میده که از اونجا بلند بشه تعبیر شده طولی که انسان بده مثلا تو مسجد نشسته یه جای خوبی رو گرفتادن بهش پولی میده تعبیر به رشوه شده درستات که اینجا اصلا نباب قضاوته نباب هیچه بیاد رشوهی مصطلح بیجنفی بی وجود نداره. اینی که به احتمال دادن مطلق طولی که انسان میده برای که کار خودش رو بگذارونه مطلقا این رشده از طرف دیگه در بعضی از کتب لغت مثل کتاب قاموس که خوندی اون روز رشده رشده رشده باید نمیشته از جول جول یعنی پولی که انسان قرار دیده ایشون تفسیر کرده به جول که احتمالا رشوه رو اوسع از بابه رشدهی در باب قضا که الان به ذهن ماست گرفته. من و استاد اینجا فهموندن این مطلبی که در کتاب خاموس آمده این ازواق شن لغریه که تعریف لفظی میکنه مثل سقدانت و نفتون این به اسطلاح تعریف به عام میکنن به عام میکنن این ارزش علمی نداره بعد مثلا جوال اگر این طور باشه ای کسی گفت مثلا کسی ماشین من پیدا کردن آلا پیش جایزی میدم مجدرانی یا این که این قطعه هم رشه اصلا که ظاهرای مراد ایشان از جول اون طوبی رو که در باب هر قرار میده نه مرادش مطلق باشه یا در باب امور اداری کسی بگه ماشین من رک کرد در این درستانشون نظرش به جول به اون توضعه باشه حالا این توضیحی رو من عرض کنم این که ایشون فرمودن تفسیر به ام کرده نه اینطور نیست این رسیه ایشان ببینید در کتاب لغت چون نظرشون در طور را بعد اساسا اون لحظی که بخصف ظاهر یک شکل داره اما دارای معانی متعددیه اونا هدفشون فقط همین مقداره مثلا فرصه افشان افشان نهی کسی که داره مثلا حالتشنگی باشه بعد فرصه یک کسی هم از عمرای جاهلین بوده که در سال بلا بوده چه این بوده چه این بوده اونم هم اسمه افشانه ده مثلا بوده میسان ذا امیر الجاهدی یعنی فقط دهن مقدار در لغت اختفا میشه خود درک کنید نظر ندونید شرح حالشو بگم بوده چه درش کی بوده مادرش بخواد بگه این لفظ در اچان شما نگاه میکنید با یه معنی لغوی شده که این نام یه امیر سیار جاهدی است این که اینها میگه مثلا در کتابهای ادب اگر ببینید مثلا آموس امیر الجاهدی مثلا فلان اسمو طرسه دیالا قابل نمیکره مالکش کی بوده؟ در چه زمانی بوده؟ چطور بوده؟ سرعت؟ مثلا نظر به این نظر هست. مثلا فرسه؟ مثلا نموام مثلا شقایر میگه شقایر اسم مثلا یکی از عمران هست اسم گیاوی هم هست این که سعدانست و نفتون چونان نظرشون بینه این لغت چناست کار ندار که این نفت چه نفتیه یهانه دارودیز یهانه بحاریز یهانه تابسونیز گل شیدیدیدیشش مثلا نازر به این مقام نیستند برای اصلا وضع کتاب لغت مثلا زیاد اسم اسمش دارن که افشانه اسم و فرسن اسم و امرعتن هم به همین اسم و امرعتن اکتفاق می کنن چرا؟ نه اینکه اینا تعریفه نعم کردن که از توستاد و ایتا می تصور کردن نه این نیست مرا تعریف به هم نیست می نیستن گیاهیست و نام یک شهر تو آفیقا سرسای یک شهر یک تو آفیقا سرسن نیمی در این مقام نیستن که خصوصیات اون شهر یا خصوصیات اون گیاه رو شهر بید. اصلا کارشون این نیست لغوی کارش موارد استعماله کار بنده که حقیقت اون گیاه چیه درست می اما رشب اینطور نیست اینطور نیست یه لبه بیاره رشوهشون در لغت استعمال شده از کردیم کلمه رش در حقیقت به معمنه یا معنی ج یک کاری که انسان با یک پولی بیا مد خود ش بنتون پولی به و اون مفیب به خودشون رو دربیه. این رو اصطلاح هم میگه. این مراد لغبی ها دیگه مثل سردانتون ن چون میفی سال استاد چ کمتر ک لغت ار کرد این مصعارف درکتطورلوحت و صف فلان اسم مهم همین مقدار اتففااق میکنن نفتو اسم و نباته لکترال فارسی هم اینطوره البته بعضی از کتب اصلا رو جاق متعذل پس این کتب لغت نامه اسمی گیاه رو میبره که نصلا نشد از کلان لغت, لغت گیاهی بعد از کتاب پس که توفه حکی محمد این گیاه نحق میکنه این کار لغوی نیست این کاری که در لغت نامه آمده اسطلاح اموزه ما بشینن دارت المعارفی کار موسوعیه یک کار د کار لغوي در كتب الله اسم طرفه اسم امراته نطق به همین مقدار اینها مرادشون اینه نه اینکه اینو تعریف به امر کردن نه حقیقت کار اما را چه به ریشه که جول نشه ایشان ما این توضیح رو از کردیم این احتمال بسیار بسیار قوی است اصلا در حد قوه بعد almış بحث بکنه احتمالا نظر صاحب آموز این باشه که ایشون رشوه رو عوصه از دائره باقی قضاوست میکنه نه این که تعریف رو هم میکرده کردم خدمت. در اول رشوه مثلا ببینید شما یه پول میگید به قاضی که نه به شما حکم بکنه یه پول میگید که اصلا قاضی بیاد قضاوست بکنه بسه اصلا این رشوه هست تو راز ما تو راز ما هم هست که اگر مردم به کسی پولی دادن که بیاد مسائل شرعی رو از بکنه احطا جمعا سره لفه لفه دید فساله همون رشوه فهت همون فهت همون رشوه تعبیر به رشوه مثل بعضی این آقونی منبرم این آقونی منبرم این احکام و دینی رو بران بکنه این اطلاق میشه این امم کلام آیا این اطلاق مجازیه یا این اطلاق حقیقیه اون که ما احتمال دادیم سابقا مفصل توضیح داریم، احتمالا صاحب قاموس یا اشتهادن و یا تقلیجن پس تو مغلد شافعی اون با شافعی قاعد است که پولی که شما به قاضی اون هم رشوت و اون نبره به شما حکم کنه پولی که حکم کنه این که قاموس گفته از رشوت و الجول داره تو قاموس داره قبول دارم و تصادفاً تا جل عروس شرف قاموسه که من نگاه کردن ایشون هم موفقه هست توضیح دقیق بده مراد قاموس من فکر میکنم صاحب قاموس یا اشتهادن یا تقریدن عقیدش این بوده که رشته خصوص پولی نیست که ما میدیم به نفع ما حکم بشه نه. اصلا پول بریم که قاضی قضاوت بکنه پول بریم که فقید بشینه برای مردم مسائل شرعی بگه. خود این هم رشته هست خود این هم بشن. رضا احس کردیم ممکن است ما اجرت قاضی و حرام بدانیم اما غیرت بابرشه ممکن است ما پول که به نظام اداری بگیم برای که اون تو ادارات را رد بشه که استعمال بذارم پارسین هم ها؟ و... نه اون پول رو بله اونشینی بله. بله. این در حقیقت علاقه واستر واسطه واسطه الفاظ مختلفی داری برای بله. اون لغزه پارسی رو که نه واسه این لفظ پارسی لفظ فرانسوی است معنی پوری میشه در فارسی آماده پارکی شده پارکی اونا به برتیه قراوا برتی میگن ترجمش این ترجمه نگردم لفظ فرانسوی رو فارسی برگرد این برتی که ما به فارسی میگیم پارکینگ پارکی همین یه لفظی در زبان فارسی ما الان متاسفانه رایج شده از غلطه اصلا یه غلط راهشدناکیه یعنی حالا بحث زبان شناسی بشه یکی هم این لغت پارتیس که مثلا در این این پولی که داده میشه این رو هم گفتن رشوه خب این روی چیه خوب دقت میکن تفسیر دعام میدین این مبنای علمیه نه تفسیر دعام ممکن است خیلی معتقد باشه تمام اینها رشوه پولی که داده نظام زنه اداری پولی که به فارسی میدین پولی که یک خقیه میدونی بشین منبر برای برای مردم بیانه هفتان بکنید تمام رشو هست وقتی یه عرش الجور، این یا اشتهادن روشن شد چون خواهد بگرد این نیست که سعدان اصلا نفتون پسیر هم کرده باشه که مردم استاد فرنده. نه این نیست. من توضیحات رو چند باره عرض کردم یکی از مشکلات لغت زبان عرب و کل این کتبی که در لغت نوشته شده و ریشای عقیش شده خب خیلی متأخرام مدلش اون طرفی نرسیده بله اون ریشای اصلی متاسفانه بعد از اختلافات فکری و کلامی در دنیای اسلام این کتب رو نوشته شده یعنی امان فاصو مثلا من با مثال یک فقی گفت تمام فقط به خاص جایزه بری نه و گفت تمام موسیدان سعید من یه فرقی گفت نه مطلقاً دلیگوست موسیدن سعی سامنگویی هم میشه مشکل کار این هست که خیلی باید در کتاب لغت گفت کرد که چه مقدار اینها ها متأثر به موانی خیلی و کلامی هست این نیست که آقای خوبی فرمان تفسیر به همه مثل کملاتی به همه نشون نه این این یک مبناست نه تفسیر به هم اول اونجا تفسیر به هم نیست هم تفسیر نیست زیاد هر ذره تو وقت اسم امرا زن اسم فَر زن اسم کذا تعریف اصلا نه میخوان این ده زو میگن اکشان اگر ببین گاهی اسم یک شخصه همین شخص کیه تاریخ اتن. اصلا ناظر به این نیستن قلب در تاجل عروز اون زبیدی در تاجل عروز خیلی اینا شهر داره داده لذا تاجله عروز یک نکته دیگه یک واژه معارض شده تاجله عروز هم شبیه فای حدی شبیه لغت نامه شده خیلی مرد فوقالاده از اهل یمن بردانستان کنمتری انصافا تاجر عریضی و لذا بعضی از میدونه زن در غمم بوده و از زمان قوم بحشای تاریخ تاجر عریضی جدا کردن هستن خودشه کتاب ای تاریخی اینها ها مثلا در کتاب فرق قاموس چون تازه عریض هستن قاموس در کتاب قاموسی این تا بوده مثلا فلا اسم امیرون جاهلی و هم یک کلمه که با که امیرون جاهلی این برخوش شرحالش نمیشه این سالیکی بوده ترشی بوده ماله بوده تا بعضی ادمان در قم این رو یعنی قسمت های تاریخ تا عروس رو وسیله رو به اصطلاح شرحالعلما خراجم رو جدا کرده داشتن این قد این داره اما در خود اصل کتاب قاموس یک کلمه کار اونا این نیست کار اونا وردینه نه که تفسیر درعمل کردن مثلا وقتی خطی اسم گیاری اسم شهریان هست هیچ چیز توضیح نمیده ناظر به این مقام نیست دقیق میفهم این یک سر ریست اما در اینجا در نشوه این طور نیست این تصدیر به هم نیست یعنی توستاد که خواستان این زیر بنای خکری باشنی تو؟ چون یک تصور بود که پولی که شما به قاضی میگین برای اینکه در شما حفت مکنی هم میشن. پوی میدیم به قاضی سرفیم با هم یک یک سرف دیگه آن قاضی رو بینیم موان حفظ مکنم که نادم به پوی است روایت ما مثلا احتاج جناس علیه هل فرخه پس رشوه بایی که ما همون رشوه نمیدیم و انصاف قدیه عباراتی رو که دارن انصافم خیلی احلاق داره یعنی انصافم عبارات خیلی روشن نیست خواهد بعض از عباراتی اینجا میخونم و چون دیگه یعنیم دهت احتفالی ایک نقطهی داره که بعد عرض هر سنوکم عرضش نظره داره. مثلا ببینید در کتاب شرایط نوشته ارشا رشا حرام سوا اون حکمه لبازه میهی او حله به حقه او بازه با این که الان تو ما این است که حکم ده حق رو رشه نمیدونی آه این کلوشان زیم اونی که حکم الهیست بگیم اونم حکم الهی رو بگیم خب این رو ما الان رشه نمیدونیم ما تو شرایق آمازم به حق قلع و باطله لذاه من برسوضیه عرض می کنم این خیلی تعجب آوره مثلا در کتاب مسالب داره و حق دل حاکم مالم لحجز حکم انصافاً با این به ای حساب شرایط مسالی مرون شهیدستانی از اجلا اصحابه انسان تعجب می کنه اقضل حاکم مالا لعجل حکم این شبیه همون تفسیر قانونس جهر این نکته یه ای فنمی داره نه اینکه تفسیر به هم شده باشه در کتاب انلامه در کتاب قواعد داره و یه رو مره و این حکم علا بازه رهی به حق و باقیده ارض کردم در مستند مرمون اراغی ببینید در کتاب مثباه المونیر در کتاب مثباه المونیر مثباه المونیر ارض کردم این کتاب ماده فقه شاقی این ها رو از شرح میکرمی مثباه المونیر شرح الفاظ این کتابه بر از بحث الفاظ کتاب خارجه جنبای لغوی رو متعرض شده به اولاد مثباه المونیر تقریبا الان توی تصور از ماجرا جزء فقیه نه مصباح در زمان ما بخیر کتاب ها نوشتن مثلا دال المعارف اصطلاحات فقهی اصطلاحات مثلا فلسفی این تقریبا خودش نوشته که شرح کتاب اشرح الکبیر رافی و یافقیه رافی رسم را شده در راست و در مصباح المنیر از المونی... بعد جان بحث لغوی کردن بهلا عادتا کتاب مصباح المنیر فقهی داره ایشون نوشته که ار رشده ببینید ما یعطیه شخصو اله حاکمه و غیره او غیره و غیره ببینید له او یحنه به ها این لیخ کم لح را مطلق گرفته با این که الان تو زهن ما رشده اونجاست لیخ کم به باطلن نه مطلقن می‌حکونه به واسطه هر اصل ذهن ما رشوه به قاضی غیر قاضی رشوه نیست یعنی یا دو مالونی وقتی شخص ال حاكمه و غیره پس این که گفته الرشوه الجن اون چطور این روی فقی بود اومده توی کتاب غیره بود مثلا حاکم نباشه کس دیگه‌ای باشه مثلا خاص این کارمند اداره باشه یا مثلا بازپرس باشه بازجو باشه نه ظاهر که هم پس این روشن که ما عبارات حتی شیعه سنی خونید معلوم شد که در محکوم رشوه از نظر خیقی مشکله نه دو قلی در محکوم رشوه دلحاز خیقی مشکله ما فهزون اینه که عمدتاً لغت در دنیای عرب رو بیدین شما تدوین لغت از اوائل قرن دومه از تصویباً در کوفه و عراق با اول آخوزشون بین البلده بلده مرادشون کوفه و بطرت این مثال معروف خرسون در کوفه و بطرتشون اون زمان خیلی بطارد بود برای فهد لغت ما بین کوفه و بطرت سفر میگردن این بلده مراد اینه حالا این تو چه مقدار میتونه کشف لغت؟ مثلاً قرآن یا روایات در مدینه بوده در قرن اول یا در مکه بوده در قرن اول و مشکلی ها این زمانیش جای خودش مکانیش جای خودش در کوفه چون بعد از فکر کوفه بعد از ایران از همون سال 17 که کوفه تأثید شده با قرن اول موظم اهل کوفه رو ایرانی ها تشکیل می دادن خیلی از الفاظ فارسی خای در زبان عرب جا افتاده بود مضافن به وجود یک تایفه تقریبا حالا مثلا مثلا عرب نفسی که تقریبا مثلا تقریبا شبیه این که ما میگیم تقریبا دفاقی مثلا کوگی اینا عرب هایی بودن که روحل بودن در مناطق به اصلا جزائر نه جزائر شمال آفریقا ها جزائر حالا نفس و شرحش این شاله در خیلیه الان کیف ماکان ماشی... مثلا در کتاب نهایی ابن اسیر که این شهر لغویه نوشته ارشوه و هر چیزی که به حاجتی که داری شما رو با اون درستان با ساختن و با یک طرق دیگه بینید این الوصله این معنی عامه پول باشه پول نباشه شعر بگه تملق بکنه الوصله تو الال حاجه امنه اداره باشه ارکشی باشه نظامی باشه انتظامی باشه هر محصیح بختم از... کنه پس این این نیست که خرج بکنیم صاحب نهایه با عنوان یک معنای لغوی این کار انجام بده. البته بیشتر می‌خوره که و لذا ایشون یه اصل عمر نشا ما یادموارهتون بشی در اول بحث از کلمات مراجعه کردیم به رشف فارسی چیزی شبیه رسانا چیزی که رو به یک چیزی رسونه ایشون یه اصل جدا همینه. اگه ما مراد به کلمه رشفوره به فارسی روشنی معنا بکنیم شاید رسانا اسمش رو اما این نیست انصافش ما در ارخ این رو نمی ببینید در مجموع البحرین این بعضی آن تصور که مثلا مجموع البحرین کتابه است، این با اون کتابه و تا عارض نه هر. این مال زمانه مجموع البحرین شیعه و در زمان متاخه و در قبل و رشوه از شخصو الهاکم و غیره بود فیحکمله فیحكمل او یحمله الا مایوری این عبارتی بود که از عبارت سه از عبارت مثبالمونی خوندی بعد میگه وزم و, و لغتون بعد اینطور میگه آخر عبارت مجموع دقیق ورشرتو قلماتو سعمل الا فی مایوتوستل و بیه الا ابتال حق اون تمشیت باطله این مخصومی که الان تو دهن ما <تصال> <تصال> الان تو ما اینه این آخر این مثلا این محکوم بعد چند سال شده بعد از به هزار سال تو مجموع بحرین الان عرف ما اینه میفهمه عرف ما انصافه اینه این که ایشون آخرتو این بحث عرفی که ما میفهمه و رشوت و قلمات و سمن الا فی ما و سلو بیهی الا ابتال حقه او تمشیت باطله لکه این شما نگاه کنید عبادت شرایی عبادت علام اینا پونیت هست قبل ازشینا. این لذا نشون میده که خود این لب دقیقا انصافاً در مجموع خیلی روشنی نیست مثلا در مستند داره که لا کلام که اندر رشات الالخاضی یا المال المعبود من احد الخسمه اومن هما او من غیره هما علی علالآخر او اهداری ارشادی به جمله راست اینم مشکل اهدار این در فی ان حکم اول ارشاد فی ماهیتی حل رو مطلبان شامل دل حق اول باطل او یخص و بالحکم و بالباطل مقتضا اطلاق الکسر و فسره والدی و المتفاهم رو الاغول که باید باطل باشه و رو از داسته و الکنز رو اجمان و یدول و علی بله شامل ند شامل حق و بعد ایشون میگه باید شامل حق و باطل باشید بعد اون روایت انر رجالی هر شد حالا یه حالا این صاحبا بعد از تعملات زیادی که ما انجام دادیم رسیدن به یه معنای لغوی واضح در زمان نزول قرآن و در زمان پیغمبر اکرامسی در مکه در مدینه در آیت قرآن که رشتی ما نداریم در, در تفصیلی که در مدینه آمده اکله و سول ام رسول الله خال ارشت رو در روايات دارنده الله راشیال مرتشی انصافش رو خدا نمیگه هر چی فکر یک نتیجه واضحی نرسیدی این معنی رو که مرحوم مجمع البحرین گفتین درسته این مدلد. مطلب مجمع البحرین باید. این مطلبی که بعدها در قرف آمده یک مفهوم ارضی است اما در قرن در مدینه و در مکان در مکتب های نظامیان استعمال نمی شده استعمال مدنیش که لعن الله و راشی و مرتشی مثل صاحب, حد... صاحب شمایه مطلق گرفته حق و باطل ما الان فقط باطل می حق نمی کنم انصافا خود من تا اونجای که سنی کردیم کلماتو به هم و یک کاری انجام بدیم درسته رشان وانی ریسمانه این قبوله اگر این ماده با در نظر بگیریم این مناسب مطلقه چه حقه باطل رساله هستی که آدم زرسونه ما خواهد هر باشه واسه باشه اما انتظام بین که این مراد از روایات اینه لعن الله راشی المرتشی این هم بسیار مشکله انصافا مشکله این کلام میرم که صاحب مجموع بحثیت مجموع بحثیت اصول خیلی کساب ارزش علمی نیست اما انصافا اینجا رو دا شم گفته ای کاش فیل میزد که الان اینطور ما میفهمیم رشته در خصوص باطن تمشیه باطن این هر حرف خوبی این اما بالاتر از 12 ها میاد 13 ها که ای اساس آدمان نقل استقام قهرای قلیل می خواد تا زوال پیغمبر برسید و لذا اگر یادآور باشم ما تو اول درس حرف قصه اینطوری کردیم که انسان به قضیه چون کلمه رشوه این لعن الله راجی المرتشی یا رشوه به طور مطلق در روایات ما نیامده مثل این ب بایدیت پسعلاقمرش و رشوه هم سند زید به هم مجازه مثل این رووادی یعنی که از جای خودش بلند بشه این هم روش ص من نگاه نکنین چشه سحیح که این دعا مجازه یعنی هیچ جای ای هم که فهم مجازی داریم چون این لحن الله و راشال متشیر ما نداریم ارش هم مطق ما نداریم در صند سعی به نظر من خیلی برای ما فده بحث عیدی نداشته باشه اون که ما داریم ارش شاپل حق مقیست ده به حق عربه شاپل حق هر دوش مقیست ده به حق یه من مشکل برای ما نداره بله عربه شاپل حق ممکن است که ادعا بکنن مخلق شامل حق و باطل بشه لیکن انصافا این مقدار رو میشه قبول بکنیم که لاعقل انسان مختیراتی میبینه انصراف حق داره میشه. و در روازات هم عرض کردیم هم هدیه آمده هم اجرت آمده. سور بارات اهل سنت آمده به استجعال جول استجعال نه استجعال لذا میشه فهمی که صدق رشته در جول و اجرت و اهل اجرت بسیار بسیار, بسیار بعید به هر حال انصافا تا اونجایی که خود من هرچی پیدا کردن بتونین یک چیز واضح روشنی رو به حسب شباهد ارفی و لغبی پیدا بکنین الان خیلی مشکله به جای درست نتیجه حسابی نمیدرسیم اما به لحاظ حط الان ما مشکل نداریم چون اون جیوانوان رشد آمده در روایات ما در خصوص و حکومته مضافن به این که میگه من کارم گیر کرده و پوی میدن که کارم انجام بدن حق به من ایمان کنش را دارد و از فرم دیده که از صحابم آمده بابا و در این جهت مرغوم آقای هم یک جمع بندی یه این ما برسید به همین جنوردی مرحوم آیی روانی و با اون ختمش بکنیم مرحوم آیی روانی میفرمون مجموع محتملات نعنه رشه خمسه این حرف ایشان لطیفه انصافا مجموع روایات و کلمات لغویین و کلمات فوقها و همه که هم انصافا انسان یک نتیجه واحدی نمیرسه مطلق الجول ایشون مطلق الجول المندر جفی اجرت و اجرا. حتی کارگر اصلا بگه هر دیگه ماشین من میاره. مطلق الجوع. دو. الجوع لا علال قضا و تصدی فرق خصومه که ما اصلا هم بهش قدرت میگیم. آقا پول بسیدیم بیا قضاقت بکنم. سه. الجوع لا علال حکم بالواقع لنفسی کان اول غیره من پول بسیدن که تو حکم الهی بیاره به رفعه ما باشه به این معنی سه با. هر تمام اینا چه کلمات آمده انسان چهار و جعل و علال حکم لنسته حقا کانا و باطلا آسا به نفر من حکم بکن چه من حق باشم که باطل باشم پنج من این پول رسوم میدم که به نفر من که باطله حکم بکنی این پنج تا معنا ایشان ذکر کرده این صاحبه نم بوده حتی, حتی. نهیه بایدی تو متفرقه تقریبا همه را کرد. مجموع محتمل رو 5 پنج تا گرفته یک جعلی که حتی شامل اجرت بشه که آقای نوشتن، هم این نوشتن این بعید این بعیده به خاطر اطلاع با عنوان جعلی که در کلام خاموس بود و جعل علال قضا پول بده که بیا قاضی بشه و تصدیه حصل خسومه دو و جعل علال حکم واقع پول بده که تو واقع رو گوچه به نبیه من چه به ذرمم چهار ل ج ال حف تو به من حک من میخوا هر باشن با باسه حتی بااصلن بودن به ن حق بودن به ن. ل جلو ال حکم این پنجشا استمالی که ایشان در باب رششته داده و این ساف به استثناء احتمال اول که بعی آ بودن خیلی دیده. وشون میشه متیت کرد من, ب... ب... من بین بفیر و اول اول من ما یکلقل قطعه آل بسرانه آه فاظل محاصر ما عبارتیشونو کامل نب نکرده میگذاره از عبارتیشونو برده اولی که مطلق جل باشی کار آه خویان فرمان قطعه به بسرانه این که خیلی بعیده بگرد که ماشین من غربش پول میرن بگیرم این که خیلی بعیده این صافت این که بسیار بعد ایشون که وز متعب بین بقیه معانی انلم یکن وز ظاهر حوال اخیر این ساکر این استظهاری ایشان خوبه یعنی حتی اگر که من خود میدم به نفع من حکم این حق باشم که باطل این هم معلوم ازداشته باشه رشته فقط جایست که به نفع من که باطل حکم بکن برای این صورت هست. نه به نفع من مطلقاً حکم بکن بسنشون؟ اگه بگه مطلقاً به نظر من حکم چه حق باشه چه واسه این هم معلوم نیست دقیقاً باشه ظاهرش اینه این ظاهر رو فقط باید باهای ایروانی توزیع دید ببین از کجا استدلال کردین الان عرف ما این نیستن الان عرف ما رشوه این نیستن الان مثلا دزدی سرآمده هزار سال الان مثلا میخوام دارم این طرف مال و این مرزبان ها پولی بودن یعنی یه رشگهی به این آدادی که برن همتره. روایت داریم چرا روایت هم داریم اصلا روایت داریم که پول میدونی تو محسن میگه یرش و رجل میگه برم بشه من جهشو یار یرشو داره لیکن که کارم مجازه میفهمیم که در روایت میفهمیم یعنی لعن الله راشی و مرتشی به ذهن ما این میاد که دلش پیش بازدیدی که به نظر من که باطل حکم بکنه دلش میدم اینو ما اینجور میفهم کلمه رشوه تو نظام اداری به کار میذارین تو نظام نیروی انتظامی میگه به ترواضیش میخره پول میده مثلا مارکسی میگیره ازش همه اینا رو ما میگیم رشوه عرفان تو نه معلوم نیست به نظر مکنه. من باغات حکم میکنه من می رشته رشوه باشه تازه متأثر از ایشان خوبه بگم بده اما این استظهار معلوم نیست اب... مثلا از عباد محقق در شایدی معناه در نمیاد نه. از عباد فوق در نمیاد از عباد لغتی, لغتی ها در نمیاد انصاف هم در نمیاد لکن ما الان روی ارتکازات خودمون وقتی بگیم رشهی که پیغمبر لعن الله و راشی و المنتشی و رائش و کفرون بالله العزی به ذهن ما این معنا خطور میکنه پول بدین به قاضی به نفع ما که باطله این حیث. به اما ما که بادل حکومت با. آه هم میگونم ولی ضرور کردیم یک کلمه شما من منعین استرزه هر از ها درزاره <تصفح> بله یک مقدار مناسبات و موضوع ما هست یک نقصی دیگه هم هستی در ارتفاع دو هست هست به قدر تیفت هست یعنی از اون برشون رشافل حکم هست و کفر العظیم هست اینا بگیم مثلا به مرز پول بده به مرز کرد بشه خیلی بعیده که اون عرشاپل حکم و کفر به لاعظیم شامل این پول دادنه این پول یا به اداره دنیا یا به, یا به اداره مثلا کار میخواییم بگیزارم خیلی بعیده این یا کفر به لاعظیم باشه یعنی منشه استظهار یک مناسبات و موضوع دو اخذ به قدر مسیح این منشه شده که الان در ذهن ما الان اینطوره که اون روالات رشعه اینطور میفهمید پول بده به قاضی که به نفع او حکم بکنه و باطل هم باشه نه مطلقاً فقط چه ایرادی که پول بدهی نیست در اطلاق رشته شده چرا اما ما الان اصطلاح رشته به قانون شرع هیچ نمی‌فهمیم الا حاله این معنا یعنی پول بده به قاضی که به باطل او حکم بکنه قطعاً رشوه است و حرام حرامه بقیه مصادیق هم یا به تعبیر بعضی از فقها رشوه است یا اگر رشته نشه عناوین دیگری داره مثلا پول بده بیاد قضاوت کنه انصافا رشته نیست این اسمش جعل بر قضا یا اوجره بر قضا اگر بخواد ورماشه پیدا بکنه از ما بر پس بنابراین این این که مرحوم آی روانه این فرند تغییرات ظاهر اینه این ظاهر از مجموعه عوامل متعددی پیدا شده انصافه نه از قول و قویه ها میشه این نه از قول خودمون و نه از قول فوقهای, فوقهای چودی ها خون میبینه بارازشونه لیکن الان ما وقتی میگیم در دستگاه غذایی رشد به ذهن این میاد پول بدن بیاد بشونه غذایی رشدشونه پول بده که ما با من بر باسدم میخوام به زور بگیدم پول بدیدم که این کار رو انجام دشنه. ده به هر حال ما چون لفظ رشیر در روایات نداریم چون رشیر فلحکم و رشا فلحکم داریم خیلی مشکل نداریم پس این صورت اخیر قدر متعقن از اون رشیر حرام و کفرو بالله العظیمه اناوین دیگه هم یا عنوان دارن یا دخل در مقایین دیگه مثلا به نظام اداره او فساد نظام پول میده به پلیس از چلاف درمز رد پول میده کذاب این هم کار حرامیه ممکن است نه حرام باشه به حکم ولایی بعد به خاطر اخلال در نست لیکن به عنوان رشده نمیشه ازش اگر هم اینش به اینش رشده به حساب استلاح ما ظاهرا استلاح مجازیست بله خود رشوه قرار خاصی نیست اگر خودی رم داد به عنوان هدیه که به نفع اوحفن واطن په زاران هم رشده اینه که ثابت هم گفتیم اگر اختلاف که این هدیه است یا رشوه رشوه یا هدیه فاسد اونم فهمون علی فضا رشوه چه اگر اگه این یاد باشه پس بنابراین رشوه خودش عنوان نیست خودش عقدی نیست مثل عقده بی عقد اجاره نه عقد خاصی نیست هر پولی که به قاضی داده بشه که به نفع او به واسطه حکم میکنه این اسمش چیه صرفا پول نیست و مثلا اما اگر پول نباشه قصیده ای در مرجع بشه احتمالاً صدقه ارزش از عرفی درش مشکل باشه و حرام از ما به بر ظلم حرام هست اما صدقه روش نیست الان که دماغا انصافاً او در علاوه بخوایم برای شما بعد سامی حرفا یک معنای دقیقی رو با در نظر گرفتن شواهد عرفی و, و لغوی و کلمات فقها و مفصلی راجع به این جلد بگید اون مقداری که ار آن واضحه نه یعنی ار رشدات و که در واضح آمنه هست و لم یه به ما انزال الله که اطلاق داره و کذالب تدلوبه های اله حکام که حضرت رزا تبدیل فرمودن به کلی که انسان انجام ده یعلم انه و ظالمه این رواید یعنی که حضرت رزا آمده مناسب است با معنی پنجم به قول مقومه ای پس این معنی پنجم قدرمونت یعقدر از بقیه محل اشکاله ولی ممکنه حرمتون ها از انوانی دیگه ثابت بشه و سلالله خوالا محمد و آله طاهرین که آفشان سرزدنه خب العلم و نقطتون واقع